شنوندگان خوب های صوتی ا داستان داستانهای کتاب سیندرلا و کفش شیشهای و چهل افسانه دیگر با داستانی در خدمتتون هستم امیدوارم از شنیدن داستان لذت ببرید اسم داستانمون هست انگشتر برونز یکی بود یکی نبود غیر از خدا هیچکس نبود تو سرزمینی پادشاهی زندگی میکرد که یه باغی تو قصر خودش داشت اما با اینکه تعداد تعداد باغبوناش خیلی زیاد بودن و زمین اونجا هم خوب بود هیچ گل و میوه و درخت یا حتی علفی در اونجا رشد نمیکرد. یه روز پیر مرد دانایی به شاه حرفی زد که کاملا از باقبونها نامید شد. اون گفت باغبونای بونای شما کارشون رو بلد نیستن. شما از کسایی که پدرهاشون نجار یا پینه دوز بودن چه توقعی دارین؟ اونا باید از کجا یاد می که باغ شما رو چهجوری گل کاری کنن؟ شاه با عصبانیت گفت راست میگی همینطوره. پیرمرد ادامه داد شما باید باغبونی را رو استخدام کنید که تموم اجدادش باغبون بوده باشن. به این ترتیب باغتون پر از گیاه های سبز و گلای شاداب میشه و شما از خوردن میبه های خوشمزه اون لذت میبرید. به این ترتیب پادشاه قاسدهایی رو به دنبال پیدا کردن باقبونی که پدر و پدر هم باغبون بودن به شهرها و روستاها و دهکده ها و سرزمین های اطراف خودش فرستاد. بالاخره بعد از چهل روز اونا موفق شدن یه نفر رو با این شرایط پیدا کنن. قاصدها بهش گفتن با ما بیا و باقبون شاه باش. باقبون گفت من چطوری میتونم به خدمت شاه برسم؟ من آدم فقیری هستم. اونا گفتن اشکالی نداره. این لباسهای رو بگیر خودت و خانوادت اونا رو بپوشین. باقبون گفت ولی من به افراد زیادی بدهکار هستم اونا گفتن باشه ما غرضهای تو رو پرداخت میکنیم به این ترتیب باقبون تونست نزد پادشاه بره باغبون به همراه زن و پسرش با قاصطها به خدمت پادشاه رفت پادشاه که از پیدا کردن یه باقبون درست حسابی خوشحال شده بود بورن اونو به نگهداری از باغش فرستاد. مرد باغبون که این کار رو خوب بلد بود، خیلی زود باغ پادشاه رو پر از گل گلو میوه کرد به طوری که تو پایان سال باغ دیگه شبیه سالایی پیش نبود. پادشاهم به این خدمت کاری جدیدش هدایای خیلی فرابونی اهدا کرد. باغبون یه پسر داشت. پسر سر باغبون مرد جوون و خوش لباسی بود که رفتاری پسندیده و مناسبم داشت اون هر روز بهترین های باغ رو برای شاه میبرد و گل‌های زیباییم از اونجا دستچین می‌کرد و به دختر پادشاه تقدیم می‌کرد دختر پادشاه که خیلی زیبا بودش 16 سالش بود پادشاه با خودش فکر کرد که دیگه وقت اون رسیده که دخترش رو به همسری جوون مناسبی در بیاره. یه روز به دخترش گفت فرزند ازیدم تو در سنی هستی که باید ازدواج کنی. من فکر میکنم بهتره با پسر صدر ازم ازدواج کنی. شاهزاده خانوم جواب داد پدر من نمیخوام با پسر صدره ازدواج کنم. پادشاه پرسید چرا؟ دختر گفت به خاطر اینکه من پسر باغبون رو دوست دارم. با شنیدن این حرف پادشاه اول خیلی عصبانی شد و سر و صدا راه انداخت. ولی بعدش آروم شد و گفت چنین مردی شایسته دخترش نیست. ولی شاهزاده خانم جوون از تصمیم خودش برای ازدواج با پسر باغبون پشیمون نشد. پادشاه با وزیرای خودش مشورت کرد. اونا گفتند شما باید برای خلاص شدن از این پسر یه کاری بکنید. هر دو خواستگار رو به سرزمین دوری بفرستین. هر کدوم که زودتر برگشتن میتونن با دختر شما ازدواج کنن. پادشاه نصیحت وزیراش رو گوش کرد و این کار رو انجام داد. پسر سدرعزم با یه اسب چابک و کیسه پر از طلا و پسر باغبون با اسبی چلاغ و پیر و کیسه پر از پولهای مسی آماده سفر شدند. همه مطمئن بودند که پسر باغبون هرگز از این سفر نمیگرده. روز قبل از سفر دختر پادشاه پسر باغبون ملاقات کرد و بهش گفت: شجا باش و یادت باشه که من تو رو دوست دارم این کیسه جواهر رو هم بگیر و از اون بهترین استفاده رو کن و زود برگرد و از من خواستگاری کن. هر دو خواستگار با همدیگه شهر رو ترک کردند، ولی پسر ص ازم که با اسب چالاکش چهار نل میرفت طولی نکشید که پشت تپه ها از نظر ناپدید شد. او بعد از چند روز به چشمه ای رسید که پیرزنی با لباسهای کهنه و رنگ رو رفته کنار اون روی سنگی نشسته بود. پیرزن گفت روز به مسافر جوان. پسر صدر ازم جوابشو نداد. اون دوباره گفت من دارم از گرسنگی میمیرم الان سه روزه که اینجا نشستم اما هیچکس حتی نگاهیم به من ننداخته. مرد جوان داد زد بلن کن من نمیتونم کاری برای تو بکنم و به راهش ادامه داد. همون روز عصر پسر باقبونم با اسب چلاغش به اون چشمه رسید. پیرزن گدا گفت روز به خیر مسافر جوان. پسر باقبون جواب داد روز به خیر خانم. پیرزن گفت مسافر جوان به من کمک کن. پسر گفت بیا این سر رو بگیر و پشت من سوار شد. مثل اینکه پاهات خیلی ضعیفه. پیرزن بدون معطلی پشت اون سوار شد و را افتادن. بعد از مدتی اونا به پایتخت یک پادشاه قدرتمند رسیدند. پسر سدرزم توی مسافرخونه خیلی بزرگ ساکن شده بود. اما پسر باقوبون و پیرزن به یک مسافرخونه که مخصوص آدم فقیر بود رفتند. روز بعد پسر باغبون ناگهان صدای بلندی از خیابون شنید و دید که پیش پادشاه در حال گذشتن از خیابون هستند و همه رو کنار میزنن و فریادکنان میگن پادشاه و سربر ما پیر و بیماره اون جایزه بزرگ به کسی میده که بتونه اونو معالجه کنه و قدرت جوانیش رو بهش برگردونه. پیرزن با شنیدن این حرف به پسر میکوکار گفت حالا وقتشه که تو جایزه پادشاه رو به دست بیاری. از دروازه جنوبی شهر برو بیرون. در اونجا سه تا سگ با های مختلف میبینی. یکیشون سفید، یکی سیاه و یکی قرمز. تو باید اونا رو بکشی و بسوزونی. بعد خاکستر هر کدوم رو جداگونه برداری و در کیسه همرنگ خودش بریزدی. بعد باید پیش پادشاه بری و در اونجا بگی که یک پزشک معروف از شهر جنین از کشور آلبانی اومده. اون به تنهایی میتونه پادشاه رو معالجه کنه و نیروی جوونیش رو بهش برگردونه. دکتورای پادشاه حتما میگن که اون یه دروغو متقلبه و هرچی بتونه برای تو مشکل درست میکنم. ولی سرانجام تو پیروز میشی و به خدمت پادشاه میرسی. اون وقت بگو که به اندازه بار سه قاطر برات تیزون و یه دیگه بزرگ بیارن. بعد درهای اتاق رو ببند که کسی وارد نشه. آب رو در دیگ روی آتیش بذار وقتی جوش اومد پادشاه رو در اون بنداز و بذار اونقدر در اون آب بجوشه تا گوشتش از استخونش خوب جدا بشه. بعد استخونها رو در بیا رو درست کنار هم بچین. وقتی استخونها رو درست کنار هم گذاشتی از خاک سرا روی اون بپاش و به این ترتیب پادشاه زنده میشه و درست به شکل دوران جوونیش تو بیست سالگی میشه و بعد برای پاداشت به پادشاه بگو که انگشتر برونز اونو میخوای این انگشتر هرچی رو که آرزو کنی بهت میده برو پسرم و خوب دقت کن که چیزایی رو که گفتم فراموش نکنی مرد جوون حرفای پیر زن رو گوش کرد و رفت وقتی از شهر خارج شد سه تا سگ سفید و سیاه و قرمز رو پیدا کرد. اونا رو کشت و سوزون و خاکستراشونو در چند تا کیسه ریخ. بعد جلوی قصر پادشاه رفت و فریاد زد: یک پزشک مشهور همین الان از شهر جنین در آلبانی اومده. اون به تنهایی میتونه شاه رو معالجه کنه و نیروی جوونیش رو به اون برگردونه. پزشکای دربار اول خیلی به مسافر غریب خندیدن ولی پادشاه دستور داد که اونو به حضورش ببرن. بعد هم دیگ و هیزوم لازم رو براش فراهم کردن و کمی بعد از اون پادشاه داشت در دیگ میجوشید تقریبا وسطای روز به سر باقبون استخونای پادشاه رو کنار هم چید و خاکستر رو روی اونها پاشید. هنوز پادشاه کاملا زنده نشده بود و جوان و زیبا نشده بود که فریاد زد. سرورم من چطور میتونم از تو قدردانی کنم؟ میخوای نیمی از گنچ رو به تو بدم؟ پسر باغبون گفت نه. پادشاه گفت دخترم رو چطور میخوای دخترم رو بهت بدم؟ پسر باغبون گفت نه. پادشاه گفت نیمی از سرزمین رو میخوای؟ سر باقبون گفت نه من فقط انگشتر برونز شما رو میخوام که میتونه آرزوهای من و برآورده کنه. پادشاه گفت آخه من این انگشتر رو خیلی دوست دارم ولی باشه با این حال تو میتونی اون رو ببری و انگشتر رو باندار. به اون داد پسر باقبون رفت و از پیرزن فقیر خدافظی کرد و بعد به انگشتر گفت که یک کشتی باشکوه برام فراهم کن که با اون به سفرم ادامه بدم یه کشتی که بدنش از طلای خالص دکلهاش از نقره و بادبونهاش از ابریشم باشه خدمه کشتی دوازده تا مرد اسیل با لباسهای گرامبه ها و نیکولای مقدس سکاندار اون باشه بارشم الماس یاغود و زمور باشه. فورا یک کشتی روی دریا ظاهر شد که تمام مشخصاتی که پسر باغبون داده بود رو داشت. اون سوار کشتی شد و به سفرش ادامه داد. بعد از مدتی به شهر بزرگی رسید و در یک قصر اقامت کرد. چند روز بعد رقیب خودش یعنی پسر صدر ازم رو دید. اون چون همه پولاش رو خرچ کرده بود و بی پول شده بود مجبور بود که توی ماشین حمله آشغال کار کنه. پسر باقی به اون گفت اسمت چیه؟ فامیلی چیه؟ از کجا اومدی؟ جواب داد من پسر صدر یک سرزمین بزرگ هستم. ولی حالا مجبور شدم که این کارهای پست رو انجام بدم. پسر باقبون گفت گوش کن اگرچه من چه زیادی در تو نمیدونم اما بهت کمک میکنم. من یک کشتی به تو میدم که به کشورت برگردی ولی یه شرط داره. پسر سجزم گفت اون شرط هرچی باشه من قبول میکنم. پسر باقبون گفت به قصر من بیا. پسر سدر دنبال غریبه‌ی ثروتمند به راه افتاد. اون پسر باغبون رو نشناخته بود. وقتی اونا به قصر رسیدن، پسر باغبون به خدمتکاراش علامت داد و اونها مرد تازه وارد رو لخت کردند. بعد دستور داد این انگشتر رو اونقدر داغ کنید تا سرخ بشه و پشت بدن این مرد رو با اون داغ کنید. خدمتکارا دستور اونو فوراً اجرا کردند. غلیبه ثروتمند گفت: ای مرد جوون حالا من یک کشتی بهت میدم تا به کشورت برگردی. و بعد رفت و به انگشتر گفت: ای انگشتر برونز، خوب به حرفهای سرورت گوش کن. میخوام یک کشتی برام آماده کنی که بدنش از چوب‌های فرسوده و کهنه به رنگ سیاه ادبون کهنه و پاره و دریان اوورداشت همه مریض و ضعیف. یکی پا و دیگری دست نداشته باشه. یکی گوش پشت و یکی چلاف و دیگری کور باشه. خلاصه بیشتر اونها زشت باشن و صورت و بدنشون پر از جای زخم باشه. زود باش این کارها رو عملی کن. پسر صد سوار بر اون کشتی شد و به کشور خودش برگشت با وجود اینکه در شرایط بسیار شرماوری از راه اومده بود اما استقبال خوبی ازش شد اون به شاه گفت من اول برگشتم حالا شما باید به قولتون عمل کنین و دخترتونو به من بید به این ترتیب مقدمات مراسم عروسی فراهم شد شاهزاده خانم بیچاره اصلا به این کار راضی نبود و خیلی از دست اونها عصبانی بود. صبح روز بعد به محض طلوع آفتاب کشتی عجیبی از راه رسید. همون موقع شاه از پنجره قصر بیرون رو نگاه میکرد، یهو فریاد زد چه کشتی عجیبی. بدنش تلاست دکلهاش نقره و بادبون‌هاش هم ابریشمیه. یعنی کدوم شاهزاده صاحب این کشتیه؟ آیا واقعا نیکولای مقدس که روی سکان ایستاده فورم برید و کاپیتان این کشتی رو به قصر دعوت کنید. خدمتکارا اطاعت کردم و خیلی زود یک شاهزاده جوون و جذاب که لباس ابریشمی و تدین شده با الماس و موروارید بتن کرده بود وارد قصر شد. پادشاه گفت: مرد جوان خوش اومدی، اسمت چیه؟ آیا افتخار میدید تا وقتی که در این شهر هستید مهمان ما باشید؟ پسر باغبون گفت: متشکرم آقا، حتما پادشاه گفت: دختر من داره ازدواج میکنه. آیا شما عروس و داماد رو دست به دست میدید؟ گفت: بله، حتما کمی بعد شاستاد خانم و نامزدش نزد اون آمدن. کاپیتان جوان فریاد زد وای چطور چنین اتفاقی افتاده؟ آیا شما واقعا این شاستاد خانم زیبا رو به این مردک دادین؟ پادشاه گفت ولی اون پسر صدر ازمه. Kapitane گفت یعنی yani چی من نمیتونم دختر شما رو در دست این مردک بگذارم. این مرده یکی از خدمتکارای منه. پادشاه گفت خدمتکار شما کاپیتان گفت بله در سرزمینی دور از اینجا اون توی ماشینه آشغال کار میکرد من دلم براش سوخت و اونو به خدمتکاری خودم گرفتم شاه فریاد زد نه این غیر ممکنه کاپیتان گفت میخواید به شما ثابت کنم این مرد با یک کشتی کوچک نزد شما برگشته که من بهش دادم بدن این کشتی از چوب‌های سیاه رنگ بود و دریا همگی مریض و ضعیف بودن. شاه گفت بله درسته دقیقا همین طوره. پسر زد رزدم فریاد زد نه این درست نیست من این مرد رو نمیشناسم. کاپیتان رواب داد جناب پادشاه دستور بدید نامزد دخترتون لباسهاشو رو در بیاره تا جای داغ انگشتن منو. رو پشت اون ببینید پادشاه میخواست چنین دستوری بده که پسر صدر ازم برای به روش قبول کرد که داستان حقیقت داره کاپیتان جوان گفت حالا منو شناختید شاهزاد خانم گفت من شما رو شناختم شما پسر باغبون هستید که من همیشه دوستتون داشتم و میخواستم بااتون ازدواج کنم خلاصه پسر باقی با شاهزاد خانم ازدواج کرد. چند ماهی گذشت که اون زوج بسیار خوشحال و سرحال بودم و شاه هم از اینکه تونسته بود چنین داماد شایسته ای داشته باشه خیلی خوشحال و خوشنود به نظر می رسید. ولی روزی رسید که کاپیتان مجبور شد به سفر دوری بره. اون از همسرش خدافزی کرد و به راه افتاد. در اطراف شهر مردی زندگی میکرد که همه زندگی خودش رو صرف مطالعه کارهایی مثل کیمیاگری و طالبینی و جادوگری و افسونگری کرده بود مرد فهمیده بود که پسر باغبون فقط با کمک یه انگشتر برونز موفق شده با دختر پادشاه ازدواج کنه با خودش گفت من اون انگشتر رو به دست میارم. بعد به دریا رفت چند تا ماهی کوچیک قرمز گرفت. بعد رفت زیر پنجره اتاق شاهزاده خانم و فریاد زد چه کسی این قرمز کوچیک و قشنگ رو میخواد. شاهزاد خانم صدای اون شنید. بعد یکی از خدمتکاراش رو فرستاد تا با جادوگر صحبت کنه. خدمتکار بهش گفت به ماهیار چه چیزایی میخوای؟ اون مرد گفت یه انگشتر برونز. اونا گفتن مرده که بیچاره فقط یه انگشتر برونز حالا من انگوشتر برونز از کجا بیارم؟ مرد گفت زیر یه بالش تو اتاق شاهزاده خانوم. خدمتکار پیش بانوی خودش برگشت و گفت مردک که دیوونه اصلا طلا یا نقره نمیخواد. شاهزاده خانم گفت پس چی میخواد؟ خدمتکار گفت یه انگشتر برنز که زیر بالش شما پنهونه شاهزاده خانم گفت انگشتر رو پیدا کن و بهش بده بالاخره خدمتکار انگشتری رو که کاپیتان کشتی طلا در اونجا گذاشته بود پیدا کرد و به اون مرد جادوگر داد به محض اینکه جادوگر به خونش رسید انگشتر رو برداشت و بهش گفت ای انگشتر برونز از صاحبت اطاعت کن. من میخوام که اون کشتی طلا رو به یک کشتی چوبی سیاه تبدیل کنی و همه خدمه اون رو به صورت آدم زشت و بدشکل در بیاری. اون نیکولای مقدس هم سکان رو رها کنه و بار کشتی هم فقط چند تا گربه سیاه باشه. انگشتر برونز کارهایی رو که اون خواسته بود انجام داد کاپیتان جوون که خودش رو در یه شرایط نامساعد روی دریا دید فهمید که کسی انگشتر برونزش رو دزدیده اون خیلی آهوناله کرد ولی فایده ای نداشت با خودش گفت ولی هر کسی که انگشتر من رو دزدیده حتما همسر عزیزم رو هم برده پس من چه جوری به کشورم برگردم؟ تو همین فکرها بود که از این سرزمین به اون سرزمین از این ساحل به اون ساحل میرفت و دور و دورتر میشد. اون فکر میکرد که هر جا بره همه بهش میخندن و به زودی زمانی فرا میرسه که خودش و قدمه کشتی و گربه های سیاه دیگه هیچ چیزی برای خوردن ندارن. بعد از مدتی اونا به یه سرزمین یخی رسیدن که فقط موش توش زندگی میکردن. کاپیتان کشتی رو اونجا متوقف کرد و شروع کرد به گشتن تو اون سرزمین. همه جا فقط موش بود و موش. بعضی از گربه ها دنبال اون اومدن. چند روز بود که اونا چیزی نخورده بودن و خیلی گرسنه بودم. به خاطر همین، حمله وحشتناکی به موشا کردند. بعد از مدتی ملکه موش پیغامی پیغام میفرستاد و گفت: اگه کاپیتان عزیز جلوی این گربه های وحشی رو نگیره، به زودی اونا همه ای ما رو میخورند، ما میخوایم گروهی از شجاعترین موشهامون رو پیش کاپیتان بفرستیم تا باهاش صحبت کنه. چند موش آماده این کار شدند، و پیش کاپیتان رفتن و بهش گفتن کاپیتان از سرزمین ما برو وگرنه ما همه موشهامون رو از دست میدیم کاپیتان جواب داد بله من از اینجا میرم ولی به یه شرط شرط من اینه که شما اول باید انگشتر برونز منو که یه جادوگرونو دزدیده به هم برگردونیم اگه این کار رو نکنین من همینجا میمونم و همه گربه هام رو به سرزمین شما می ریزم تا خیلی زود نسل شما ریشه کم بشه. موشاوان نامیدی و وحشت برگشتند، ملکه گفت ما باید چیکار کنیم چطور انگشتر برونز رو پیدا کنیم. اون همه موشها رو از همه جا دور هم جمع کرد اما هیچ هیچکس نمیدونست که انگشتر برونز کجاست؟ تا اینکه سه موش از سرزمینی دور از راه رسیدن. یکی کور یکی شل و سومی کر بود موشایی تازه وارد گفتند ما از سرزمین دوری اومدیم ملکه گفت شما میدونین انگشتر برنز کجاست اونا گفتن میدونیم یه مرد برجنس الان صاحب اون انگشتره اون روزا انگشتر رو درجیبش میذاره و شبها اونا تو دهنش پنهان میکنه ملکه گفت برید و اون انگوشتر رو بیارید و زود برگردید. موشای قایق برداشتن و به طرف سرزمین جادوگر به راه افتادن. وقتی به اونجا رسیدن قایق رو کنار ساحل گذاشتن و به طرف قصر جادوگر رفتن. قرار شد موش کور کنار قایق بایسته تا از اون مراقبت کنه. اونا منتظر شدن تا شب بشه. وقتی شب شد جادوگر دراز کشید و انگشتر برونز رو تو دهنش گذاشت و خیلی زود خوابش برد دوتا موش کوچیک به همدیگه گفتن خوب حالا باید چیکار کنیم موشکر یه ظرف روغن و یه ظرف فلفل آورد بعد اول دومش رو داخل روغن کرد و بعد تو فلفل و بعد اون رو در بینی جادوگر فرو برد جادوگر غررگ کنان داد کشید اوه اوه ولی بیدار نشد. ولی یه دفعه فش گرفت و انگشتر از دهنش بیرون پرید. موش چلاغ به سرعت رفت و انگشتر رو برداشت و به طرف قایق برد. حالا تصور کنید وقتی جادوگر بیدار شد و دیده انگشتر تو دهنش نیست چه حالی پیدا کرد. تو همون موقع اون موش راه افتادن. نسیم خوبی هم میوزید و اونها رو به طرف سرزمین موشها جایی که ملک منتظرش بود، هدایت میکرد. اونا درباره باره انگوشتر خیلی با هم صحبت کردم و بعد از هم دیگه پرسیدم حالا چه کسی از همه بیشتر تو برداشتن انگشتر نقش داشته؟ موشکور گفت من اگه من وای نمیستادم و مبازه به قایق نمیشدم؟ شما نمیتونستید تونستید رو بردارین؟ موشه کرد داد زد اتفاقا من بیشترین نقش رو داشتم اگه من دومم رو تو بینی جادوگر نمی کردم به دست نمی اومد چلاغم اعتراض کنن می گفت ولی من نقشم مهمتر بود چون انگشتر رو سریع تر برداشتم و به قایق اومدم همینطوری که اونها مشغول بحث بودن یهو ها باد توندی و خورد و انگشتر به دریا انداخت اون ستاموش با هم گفتن ای وای حالا به ملکه چی بگیم؟ ما با گم کردن این تلس باعث میشیم که تمام هم کشته بشه ما دیگه نمیتونیم به سرزمین موشا برگردیم پس بهتره یه سرزمین یخی پیدا کنیم و تا آخر عمرمون همونجا بمونیم در همون نزدیکی‌ها یه سرزمین یخی بود موش‌ها غائق رو همونجا گذاشتن و پیاده شدن موش کور به دنبال خواهرهاش میرفت، اونا در طول ساحل دنبال مگس میگشتند که شکار کنن و بخورن همون جوری که کنار ساحل می‌دویدن یه ماهی مرده پیدا کردن و اونو خوردن یه دفعه یه جسم سفت و سخت وسطای ماهی پیدا کردن یه دفعه همه با هم شروع کردم به فریاد زدن با شادی و خوشحالی بالا پایین پریدن و فریاد زدن انگشتر برنز پیدا شد انگشتر برنز پیدا شد اونا به سرعت دوباره سوار قایق شدن و به طرف سرزمین موشا حرکت کردم و به موقع به اونجا رسیدن تو همون موقع کاپیتان میخواست گربه ها رو پیاده کنه ولی موشا بورن انگشتر برونز رو به کاپیتان دادن مرد جوون به انگشترش دستور داد که انگشتر برونز از سرورت اطاعت کن و کشتی منو به حالت اول برگردون انگشتر اطاعت کرد اون کشتی چوبی به کشتی طلا با بادبونهای ابریشمی خدمه خوشلباس در نقره و تناپوی ابریشمی تبدیل شد. کاپیتان سوار اون شد و به افتاد. دریا نواردو با شادی آواز میخونن و از تماشای دریا لذت می‌بردند. بالاخره بندر از دور پیدا شد و کاپیتان کشتی رو کنار ساحل گذاشت. اون به سرعت به طرف قص رفت. جادوگر اونجا خوابیده بود. شاهزاده از دیدن همسرش خیلی خوشحال شد. مرد جادوگر سعی کرد فرار کنه، ولی نگهبونا اونو گرفتن و با تناب دست و پاش رو بستن. روز بعد جادوگر رو به دم یه قطار دیوونه بستن و خربارها پیچ و مهره بار قطار کردن. قطار اونقدر دوید و دوید که مرد جادوگر و بر تیکه تیکه شد و به اندازه همون پیچ و مهرهای های قاطر در اومد. امیدوارم که از شنیدن داستانمون لذت برده باشین تا داستان دیگه خدایارو نگهدارتون. سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها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 سفر شاهزادهها و شاهان با اسب تندرو و جادویی به سرزمین های ناشناخته قصههای دیو و غول و پری رشادت های, های قصهها همه, همه, همه. همه و همه و همه در کاناد تگرامی هزار افسان داستان های افسانهای صوتی. ادساین مهران دوستی